الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وزريته يجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتسموا بالله هو مولاكم فَنِعْمَ المولى ونعم النصير وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وعن من المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. دارودي شو خم. اللهم صل على سيدنا محمدك وسلّي تل إبراهيم وأل آل إبراهيم في الألمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل لقدة من لساني اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم خب يدخلني مدقل سيدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطان النصر سروران گرامی زار محترم و علما دانشگاهیان دانشویان عزیز طلاب گرامی به همه شما در این جمع خیر مقدم عرض می کنم به نوبه خودم الله سمیمان از الله تعالی می خواهم و ہمیں من دعاء کنیم اللہ تعالی این جمع را به بارگاه خودش قبول فرماید و جمعی بگرداند که در نامه اعمال ما سببش نوشته شود و سبب نجات و سبب رستگاری و سبب قرب الله وسیله نزدیکی به الله و وسیله هدایت ما قرار بگیرد و الله تعالی فایده عشر تام و عام بگرداند این یعنی فایده کاملی و فایده فراگیری به من سیب کند و اثرات اشرا الله تعالی محدود به این جمع نگرداند بلکه اثرات اشرا الله تعالی به همگان به همه انسان ها, ها جوانان و غایبین تعمین دهد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم عزیزانی که از جاهای دور آمدند یا اینجا شغل و کاری را ترک کردند و آمدن یقینا این یک مجاهدهیه قطعاً این یک قدم بزرگی و بسو حرکتی بسوی الله خیلی بشارت ها در قرآن هم آمده و خیلی بشارت ها در حدیث رسول الله ذکر شده کسانی که از جاهای دور می آیند دور هم جمع کلام اللہ می کلام الله را گوش می کنند سخنان خوب را گوش میکنند، کنند و به خوب سخنان بهتر عمل می کنند فرمود به آنها مجد بده و بشارت بده و بشر بعد الذين يستمعون القول ويتبعون احسنا و رسول الله فرمود صلی الله عليه و سلام این انسانها ها کسانی هستند که اهل بهشت روز قیامت فاهبان درجات بلند بر اینها غبته میخورند رشک رشت می کنند اینا چه کسانی هستند گفته می شود از جاهای دور آمده بودند فقط به خاطر الله جمع شده بودند نغرضی مادی بود، نغرضی سیاسی بود، نغرضی نفسانی بود فقط محبت الله بود، عشق به الله بود و هدفشون ثواب بود، اصلاح بود، تقوا بود هدایت بود اینا جمع شده بودند الله تعالی تک تک ما شما را اینها بگرداند و کلیه کسانی که در این جمع سبب شدند که به این صورت بشه از بانی این دار حضرت مولان عبدالعزیز گرفته حضرت شیخ علیه اساتید و عزیزان دانشجو و کلیه کسان را الله تعالی انشاءالله عجر کاملی عنایت بفرماید وخصوصا خزارا انجا تشريف دارا مورد اللطف خاص قرار دهات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عزيزاني قرامي لحكار هاي قرآن الكريم وسيره نبوي براي حل بقرآن هاي عصر الجديد بحرال موضوع اين باره این نشست و این دیدار است. بهتر ببینیم دیدار است. واقعاً دیداری که به خاطر الله است. عجیب درباره دیدار به خاطر الله. عجیب و هجیه است. کلمی را که رسول الله به شکل دعا و بشارت در حدیث قدسی نقل کرده است وجبت محبتی للمتزابرین فيها او حقت محبتی للمتزابرین فيها کسانی که فقط به خاطر من الله میفرماید یکدیگر را دیدار میکنند یکدیگر را میبینند بزیارت زیارت یکدیگر میآیند محبت الله لنگر من محبت من در حق اینها تحقق یا محبت من شامل حال اینها قرار گرفت به هر حال در این دیدار که این عنوان گذاشته شده بحران ها چی هستند؟ هدف این است که بحران ها را شناسایی کنیم و از این بحران ها بدر و جهان را از بحران ها نجاب دهیم اول از بند برادر بسیار عزیزم جناب مولوی عبدالحکیم در باره ریشه اساسی بحران ها بحر حال بیان فرمودن افراد ها بحران ها چیزهایی که در دنیا وجود داره و طبیعیه که یک نیشه نیست نیشه های متعددی هست ما باید به واقعیت وقتی بیاییم و, باید بیاییم و وقتی به واقعیت میاییم ببینیم می بینیم که این بحران ها بعضی ها ریشه در غرب دارد همجور که عزیز به تفصیل بیان فرمودند به شما به غور و دقت استماع فرمودید اما ما می از منظری دیگه عرض کنم که این بحران ها بسیاری از این بحران ها اونجور که از آنجا سرچشمه گرفتند بسیاری از درون ما و از خود ما هم سرچشمه میگیرند و بهرحال مهم نیست از کجا سرچشمه گرفتند ببینیم قرآن چه راهکارهایی نشان میدهد و رسول الله صلی الله علیه وسلم چه راهنمایی میکند و صالح و گذشتگان امت و موفقان و رستگاران و خوشنامان امت بر تارک تاریخ که درخشیدند اونها چطور عمل کردند و چطور از بحران ها خارج شدند و جهان را خارج کردند و به سعادت رسانیدند عزیزان گرامی بحران ها را اگر ما عنوان گذاری بکنیم به هر حال در یک فهرست تفصیلی شاید موضوع طولانی بشه و فهرست ما طولانی بشه ولی اگر مقداری مختصرتر و جنبید بکنیم، بحران اساسی بحران ایمان و بحران یقینه، بحران اخلاق در میان ما و در جهان فعلی حتی تیم بران برای همین آمدند که از بحران بی یقینی، ضعیف یقین، از شک و از تردید رهایی بخشن. بحران های سیاسی داریم بدون شهر های اقتصادی داریم بحران های اجتماعی اما این بحران ها اصلا بحران یعنی چی؟ بحران شما اگه فرهنگ در خدا را نگاه کنید گفتن یک کلمه یونانی اصلش یعنی وقتی مریدی به شدت میرسد و فرد مورد تهدید قرار بگیرد این را باهورا چنین چیزی تعبیر میکنند یونانی ها که از این کم کم گرفته شده و با باهران آمده هستند. حالا اهل لغت تحقیق کرند اونه که ادبیات برال بخونند. یعنی شدت آمده است. رنج به آج خود رسیده است و باید چاره اندیشید و مخلصی پیدا کرد و راه نجاتی را تدارک دید. اساسی ترین چیز عرض کردم که از منظر بسیاری از اندیشمندان اینه که جهان با یک بحران ایمانی رو بروست. ایمانش ضعف داره خود مسلمانان در عالم اسلام از ضعف یقین و ایمان رنج میبرند باید قبول کنیم که مقداری تقصیر به ما برمیگردد حالا اشتضادی نیست که اونچه از آنجا برخواسته اگر قوه دفاعی ما ضعیف بوده اگر شنافت ما زعیف بوده حال ما نباید بگیم که ما مقصر نیستیم الله تعالی به آن ایمانی که فراخواند لا الا الله محمد رسول الله نفی غیر خدا و واثباط قدرت برای الله اثبات عزت برای الله الله که خالق الله که مالک الله که این جهان را مدیریت میکند الله که تدبیر امر میکند هیچ مصیبتی هیچ مشکلی پیش نمیآید مگر بعذن الله مگر به دستور الله مگر به فرمان الله مگر به اجاز الله ما أصاب من مصيبة فبما كسفت أيديكم سبب شماء ويعفوا كثير وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبا قدرة فقط أزان الله إزة فقط أزان الله مهم ملك الله مخلوق الله إن العزة لله جميعا یبتوانن اندهم لذت، این لذت برالله جمعیه، و لا یحزن قولهم این لذت برالله جمعیه. لا اله إلا الله. واقع در قلب ما بیاید. ما مسلمانان که از یک میلیارد هستیم، چقدر ایمان واقعی، حقیقت ایمان در درون ما هست. ایمان انبیا، ایمان صحابه. فان به بمثل ما امنتم به فقد اگر بادی ها مانند شما ایمان آوردن به این باوری که شما رسیدید اید فقد هدوا آنها آن یافتند ریافتگانند لذا عزیزان گرامی وقتی انسان یقینش از الله دور شود و دچار ضعف یقین گردد در ایمانش در تزلزل بیاید در یقینش شک بیاید شبه بیاید حالا اساس این شبه ها از کجای از غرب از داخل شرق و از جاهای متعدده چیزهایی که با ایمان در تزاد هستند وقتی ضدهای ایمانی مناقذات ایمانی نواقد ایمانی می آیند انسان، در پرتگاه خطرناکی پرتگاه کفر قرار می گیرد. در پرتگاه شعر جانبینی ضعیف می دوچار نفاق می گردد. و به بی یک بیماری مهلک دوچار می شود. و اون بیماری هست عبادت غیر الله غیرالله. غیر الله دانستن از غیر خدا خم شدن در برابر غیر خدا، له شدن در برابر غیر الله، زلیل شدن در مقابل غیر خدا، و در جهت ارزای غیر خدا چنان تلاش کردند که هیچ فروایی ندارد، الله راضی می شود یا نه، دستور خدا می شکند یا نه، پروا ندارد. سنت پیمبر پایمال می شود یا نه پروا ندارد. انسان می شود خود خواهد، خود غرست. این کلمه خدا به خاطر خود پرست. خودش اتا می پرستد، نفس پرست می شود. خود بین، خود ستا، خود سر. و انسان وقتی به این بیماری ها گرفتار گشت دیگه بقیه بحران ها بروز میکنند. این علت العلل از منظر قرآن بقیه بحران ها معلول بحران ایمانی و بحران اخلاقی هستند انسان از اخلاق می شود عاری انسان می شود یک گرگ درنده زیبون فیزی شات پوستی بررعی گرگی اندر پوستین بررعی هر زمان اندر کمین بررعی گرگی خود را به شکل انسانا جا می و او رهبر و زمامدار و مدیر و مدبر و بالاخره متولی امر در جهان می شود گرگی اندر پوستین بررعی هر زمان اندر کمین بری گرد به شکل بره میآید و ضربه میزند به مجموعهای انسانی و بشری اینجاست که بحرانها به نام سیاست بروز میکنند یه بوی بحران سیاسی آمد. عدالت زیر پا قرار میگیرد. آزادی بیان سلب می شود. جای مساوات را تبعیض میگیرد. سروت عادلانه تقسیم نمیشود. بحران اقتصادی اینجا شروع میشه. چون یه انسان اینقدر حریض شده، اینقدر خود شده، اینقدر عابد نفس شده که میخواهد همه چیز در اختیار او باشه، در غرب همینه. امروز در رأس اول قدرت همین نوع انسان هستند که نشستند. و مازور می گویم بحران اقتصادی از کجا نشأت میگیرد؟ دنیا آمد که بحران اقتصادی را علاج کنه کمونیزم، سوسیالیزم با هر مصداقی که شما تصور بفرمایید برای چارجوی و حل این بحران آمد کارل مارکس برای همین پا به عرصه فعالیت گذاشت اما ای این بحران رو حل کرد به بحران افزود چقدر مردم کشته شدند در شرق زمین و چقدر این جمهوری های تازه آزاد شده و هنوز آثار سوش موجود و ماندگاره و اگرچه روسها اینها را از نظر سیاسی به اما خودشون آزاد گذاشتند اما بردگی فکری، اثارت فکری و رسوباتشون همچنان باقی هست اگه تونستن این بحران را علاج کنن؟ اون طرف قضیه می که ما با سرمایهداری بحران را معالجه می کنیم. با نظام سرمایه دو قطب متضاد اگه او این بحران را علاج کنن؟ چه بیش آمد در دنیا، چقدر نابرابری میبینیم، چقدر تبعیض میبینیم، چقدر گرسنگی در این جهان متمدن میبینیم که اگر هوا به مایی حرکت کند در کوتاهترین مدت میتوانند لقمه نانی برساند به آن زوی افریقا. ولی مردم افریقا از گرسنگی دارند میمیرند، در خیلی از جهان اسلام فقر دارد ویداد میکند. نتونستن چرا برای اینگه راهکارهای نبوی را زیر پا گذاشتند راهکار اسلام را زیر پا گذاشتند اسلام گفت شما تجارت آزاد بگذارید تجارت آزاد نگذشت اینجا مالکیت خصوصی را لغو کردند آنجا سرمایه‌گذاری بیمهاری را راه انداختند احتکار آمد ثروت در دست چند نفر قرار گرفت ربا آمد ربای مقوله ساده یی نیست که ما از کنارش همینجوری جوری رد بشیم ربایی که در خیلی از کشورهای اسلامی بیداد میکند و کشورهای اسلامی با وجود ادعا نتونسن کاملا آن را از برنامه اقتصادی خودشون حذف کنند اقتصاد بسیاری از کشورها و اغلب کشورها تقریبا بیمار است چرا ولی که ربا است ربا و تصور بفرمایید الله تعالی درباره شرک چنان کلمه تندی نفرموده. حتی درباره کفر پیغمبر اسلام اینقدر سخت و عید بیان نکرده که درباره غبا بهبه بیان شده است جنگ با خدا و بدترین نوع بیعفتی از زبان رسول الله بیان شده که من یعنی اگر ترجمه بکنم محمود مشکلی نیست برحال فرمان نباوی از بدترین نوای بی, بی افتی با نزدیکترین محارم خود که به دهان آدم زبان آدم نمیاد یعنی بی افتی کردن چقدر بده روا اینقدر بده سوال اینه که این روا که ایچیز اقتصادیه چرا اینقدر بد؟ فرایی که الله نمیخواهد بندگان را در حالت طبیز ببیند الله نمیخواهد بندگانش را فقیر ببیند الله نمیخواهد بندگانش را مظلوم ببیند خار ببیند زلیل ببیند که جسم قدر را بفروشند دیم را ببروشند آورو را ببروشند من یه مثالی الله با توجب قلت وقت ولی از این در فنی فرانتیزی باز بکنم کارخانجات و مؤسسایی که با ربا میچرخند دقت کنید. اینا طولهای کلان می‌گیرند از مؤسسای مالی و باید خودشون به منفعت کلانی برسند. در عوض یه چیز بسیار اندکی به نام سود و ربا می دهند. و بعد چطوری جبران میکنن؟ الله محمد تقیه عثمانی در, در سایش این را توضیح میدهد که بعد جبران چطوری میشه و خود باید به بانک یک سود کلانی بپردادند بانک دنیا جوزی میده به مردم بانک هایی که بر اساس روا کار میکنن در دنیا و آسمان خراش درست میکنن اینجوری هستند حالا این تاجر و این کاسب و این بازرگان میبینه که از من یک پول کلا نیگرفتن این چیکار میکنه در تولیدات خودش تمام آن چیز را که به نام ربا هر این در تولیدات خودش در فروش اجناس خودش همه را اینجا میارد. و همه را اینجا روی اون جنس خودش و چقدر تمام شده او میگذد که از کی این را میگیرد از مصرف کننده از مستلت. وارد مستق دست و پا میزند و بر انتظار که امسال ارزانی می شود. ماه بعد ارزانی صورت میگیرد. جنس ارزان مید می بیند نه سرعت گران فروشی سرعت تورم به قدری سرسام سرساها که این نمیتواند به آن برسد. این دارد با پاره می رود و اون سوار است. این آسه و اون دوان دوان داره حرکت میکنه. اینه که فقر و بیچارگی سراغ جان اسلام میاد سراغ انسان ها میآید، عد ای گربه و سگ های و بگیم که بحرال خانوازهایشون از هر نوع تفریح و لذت برمندند و برقرداد ادعی برای نان شبینه محتاج و در به در چقدر فاصله طبقاتی ایجاد می شود چقدر اغده ها درست می شود اصلا همین اغده بود که می گویند کارل مارکس را به وجود آورد فرماس به فرمان اون فرما چیه بود به رئیس مؤسسه ایج گفت که حقوق من مکفی نیست شما اینجور زندگی میکنید و من اینجور زندگی میکنم او اضافه نکرد او خیلی خوی اغده شد وقت کتاب سرمایش کپیتلش نوشد و یه فکری ارائه داد یه فلسفه ای ارائه داد که برای جهان تا یه قرن باعث مسیبت شد در صورتی که اسلام خیلی ای مسئله را حل کرده که ولی ربارا ممنوع قرار بدید احتکار را از بین ببرید ثروتها را عادلانه تقسیم کنید نظام میراث را پیاده کنید نظام نفقات را به اجرب بگذارید و هر چه زایده آن را در راه خیر خرج کنید یادم میشه که علامه سندی عبدالله سندی میرود به روسیه روسیه آن روز و ملاقات میکند بالینین و در یک هفته زبان روسیه را یاد میگند علامه عبدالله سندی مشهوره از شاگردان شیخ الهند مولانا محمود الحسن بندی رحمه الله است. انسانی نابغه قبلا سیک بود و به اوش اسلام در آمد. بالاین صحبت می کنه که دین میپرسد که شما چه برنامه اقتصادی دارید؟ تحلیل شروع میشه. آیه قرآن راهکار داره برای حل معضلات اقتصادی و توزیع ثروتا. بله قرآن تو یک جمله حلش کردیم. چی اون جمله؟ یسالو نک ماذا ينفقون میپرسند چی حزینه كنین چه خرج کنین چقد فل عاف عف یعنی هر چه ما ازاد بر ضرورتتونه قرآن این اصول را بیان کرده ایشون از جا تکان میخوره راوی ها میگوین تکان میخوره میگه عجب پس ما حالا که به جای رسیدم که نمی تونیم برگردیم اگر چنین اصلی بود چرا ما این همه چیزها را زیر پا گذاشتیم و این قتله را انجام میدادیم و این کونریزی ها را مرتکب شدیم. کاش بیشتر میدانیدیم ولی حالا ما نمیتونیم به عقب برگردیم نفس نمیگذاره نفس برستیه نمیگذاره برحال قرآن راکار داده قرآن میگوید موضلات اجتماعی زمانی حل میشوند که با منکرات با ظلم با باقی مبارزه صورت میگیرد اما عزیزان گرامید این بحران ایمانی، این بحران اخلاقی و این بحرانهای نفس پرسی چگونه باید مداوا بشه؟ اینجا یه بحران دیگری په، عرض اندام می کند اون چیه؟ ما امروز اون بحران اینه که ما رجال نداریم، چرا شما درس می که رجال جامعه، رجال آینده آینده ساز بشید؟ چرا این طلاب ما درد میخونند که رجال بشند الگو. امروز بحران بحران رجال هم هست بحران الگو بحران اضافه کنید به بحران و یکی از اساسی ترین بحران هست اون مرد کجایه که جامعه را معالجه کنه اون مرد کجایه که تفرقها را به وحدت تبدیل کنه اون شخص کجایه که علاج خوب تجویز کنه اعتماد حاصل کنه تربیت کنه انسان بسازه این همه نیاز داریم عزیزان گرامی من دو مثال از تاریخ برایتون میدم به عنوان دو الگوی انسانساز و دو که وقتی اینا به جهان آمدند دنیا را عوض کردن در جهان اسلام یه الگو زمانی که فسادها به اوج رفت بعد از رسول الله و بعد از خلفای راشدین و بعد از آن دوباره جاهدیت سر ده بناور الله تعالی مردی را بلند کرد که از بنی اومهیه بودو ولی نصف مادریش به عمر ابن خطاب برمی کرده و اون از عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه مجدد قرن اول عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله شما نام گرامی این شخص آشنایید من فقط توصیه میگونم هم طلاب حالا بر اهل علم و بزرگان اساتید چه بگم؟ خواهش بکنم ولی طلاب و دانوزیان را توصیل میکنم که زندگی این انسان را بخونید زندگی ایشان تجلی است از اجرای قرآن و سیره نبوی بر زندگی خودش شما سیره نبی رحمت رحمت رحمت للعالمین را میخونید سیره رسول الله را میخونید او که پیغمبر بود خلو بای راشده نمیخونی میکنید او که بودن ولی ایشون نه صحابیه نه ولی مردی مؤمن با ایمان برخوردار از قدرت یقین و اخلاق بلند ایمان قوی و مؤمن به اخرت مؤمن به اینکه این دنیا فنا و ما در امتحانیم ایشون کسی بود که نخواست با نفس پرستی مبارزه کرد نفس مبارزه با نفس پرستی مبارزه با مال پرستی خب جا و حب مال این باید در اول مبارزات قرار بگیرد چرا براییم که مولانا می‌فرماید مادر بوت ها بوت نفس شماست زان که آن بوت ما رو این بوت عشده هاست این بوت نفس یک عشده هاییه بوت پرستی بده ولی خود پرستی از اون بدتره بوت پرستی بده شرکه و انحراف بدترین کشه اما هوا پرستی خیلی بده هوا را اله قرار دادن نفر ایت من اتخذ الههو هواه و اضله الله علی علم با وجود دانش وقتی انسان هوا پرست میشه دانش به درد نمیخوره سواد به نمیخوره مدرک به درد نمیخوره نیروی بازدارنده پلیس به درد انسان از راه وارد فساد وارد نا هم میشه که هیچ کس متوجه نیست مگر دمانی که آواز هر گذشته است. نفس خطرناک است. لذا همه نفس را محکوم کردن عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وقتی که می آید کار را به دست می گیرد. یک انسان تربیت شده در مکتب رسول الله، در مکتب سیره نبوی و تعصیم می کند از سیره خلفای راشدین. چند تا کارشا، نگاه کنید من فهر کرد، ذکر می کنم مالیات های سنگین و کمرشکن رهست می کند. تجارت را آزاد می تا بحران اقتصادی حل شود. مسافران احت مورد احترام قرار می گیرند، توریست ها مورد احترام قرار می گیرند. از مالیات مواب می شوند. میگوید حکام نباید خودشون به تجارت بپردازند املاک خاص را به بیت المال دوباره بر میگرداند، مالکیتی را که بی روی مردمان داشتند اونرا الغا میکنند نه کلجرا ولی این ثروت های از کجا آمده است تماس بدون واسطه را برای حکام اعلی آزاد میبودار هر مستقیما بتواند با بزرگترین فرد تماس بگیرد مسئولین نباید هدیه قبول کنند و سوغات بپذیرند در حج اعلام عمومی می کند در کسی شکایتی دارد به ما ارجاع کند هر کسی ظلمی را به ما نشان دهد و هر کسی پیشنهاد خوبی کند از 100 دینار گرفته تا 300 دینار جایزه دارد اسراب نباید در دولت اسلامی پیش بیاید احتیاط در, در بیت المال به قدری می وقتی برای ملاقاتیشون می آین کار شخصی حسابت شخصی را آغاز می کند ایشون چراق بیت المال را در شب خاموش می کند چراغ شخصی را ایشون روشن می کند با آب گرم بیت المال حاضر نیست که استعمام کند آرزو می کند که به حج برود می فرسد از مساحبانش حج راستی چقدر حجی را داره یکی میگه که این قدر یک پس با این مبلغی که ما داریم حج نمی شود یه تربیت شده اسلام اینه که با برانها رو می شود دخترانش عدس و فیاض روزی به خانه وارد می شود می بیند دست جلو دهان گرفتن. چرا دخترانم یاد که بوی بد فیاض شما رو نیازارد می خواند از این طریق شکر را اعلام کنند. نگید راضی هستید پدرتون به جهنم برود و شما خوش بزید و خوش زندگی کنید. این سروران عزیز حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله زندگی را اینجوری عوض می کن. اما چی چیزی محرکه شد. ایمان قوی. ایمان به الله. ایمان به آخرتی که در بخشدار ما گرفته تا نقص وزیر ما باشه. دنیایش کلم روش عوض می کن. ایمان قوی. اینجا سید و لازم جمله داره که روح زندگی عمر بن عبدالعزیز و انگیزه همه فعالیتهایش و نیروی محرکش ایمان قوی و یقین به آخرت و علاقهش به رستگاری در آخرت بود و این نیرویی است که بزرگترین حاکم نیرومند روی زمین را در مقابل لذات و نفس ترسی بیمه می و در مقابل وسایل فریبنده جهان ثبات قدم می بخشد اگر بندی او را ترغیب میکرد به این خوش و خوش نوش و خوش باش باشه میگفت این نیا خاف و ربی ادا به یوم نظیم میگویند راوی میگوید که گوید دوزدخ و بهشت برای عمر بن عبدالعزیز خلق شده بود یه روز یکی را مرا نسیت کن او گفت اگر همه به دوزخ رفتند و تو به بهشت بری چه ضرری کردی و اگر خدا نکردی عمر اگر به دوزخ بری و همه بهشتی بشن. این قاد کرد یک از که برای گرمادادن دادن گذاشته بود خاموش و سرد شد عزیزان گرامی این بود الگوی تقویه الگوی اجرای عدالت اما صلاح الدین ایوبی دومین الگو فاتح بیت المقدس امروز بیت المقدس اسیره و بیت اثارت بیت المقدس رمز و نشان ذلت مسلمانانه و مسلط کردن این قده سرطانی بر پیکر جهان پاک جهان اسلام این برای همینه که بیت المقدس آزاد نشود ما چی کسی تو نیست این کار بکنه اون سلطان صلاح الدین عیوبی بود آیا اونی مولوی بود آیا اونی فقط عبادت گذار راهب بود اون یک مرد با غیرت با ایمان بود. عشق به جهاد داشت. آزادی بیت المقدس را در سر پرورید. ویشگی های زندگی او عقیده قوی و نیرومند. نمادش با جماعت. نفل و از قضا نمیشد. در طول عمرش اینقدر من نشد که زکاعت بپردازد. وقتی وفات کرد ترکه و میراسش را نگاه کردند. ما شرم نمیشه می حرف را میزنیم چل درهم و یک سکه اطلاع فقط باقی مونده بود نه خانه ای گذاشت و نه مزرعی نه پول جم کرد و آرزوی حج داشت نتوانید اینقدر مستمند بود اسلام برای حل بحران ها اینجور الگوها را معرفی میکند به جامعه خداوند مطال به صفتی داده بود ارتباط به الله وقتی در یک زمانی مشکلی پیش آمد و گروه اسلامی نتوانست ثابت شود صلیبی ها تجمع کرده بودند قاضی بهش میگوید سلطان نسخه است بری جایی در بیت المقدس اونجا که اونجا که رسول الله جای معراجش بین اذان و اقامه دو رکت بگذار قبل از اون مخفیانه صدقه کن و گریه کنو از خدا بخوا میرود و تماس میگیرد با عالم بالا با الله و انوز نمازش و گریهش تمام نشده است که خبر میرسد که در صفهای دشمن تزلزل واقع شده است عزیزان گرامی ما باید درست شریفی بخونیم زود زود عرض میکنم ما باید به خود بپردازیم ما نیاز داریم عزیزان گرامی اقبال خیلی جالب گفته است اگر میخواید جهانبان واقعی بشید اگر میخواید دنیا را نجات بزید از ورده های بحران ها نخست بگه سه مرحله داره یک مرحله اطاعت و عبادت خدا دو کنترل نفس سه نیابت الهی باید میگه نفس تو مانند شطور تشبیه میکنه نفس تو مانند شطوری هست و میگوید این خود رو خود پرسته. نفس تو مثل شطور خود پرور است خود پرست و خود سوار رو، خود سر مرد شو نامردی نکن جوان مرد باش دنیا داره در پرتیل در لبه پرتگاهی قرار گرفته و داره سقوط میکنه منجیش باش مرد اما خودت را نجات بده از بحران مرد شو آور زمام او به کف تا شوی گوهر اگر باشی خذاف هر که حق باشد چو جان اندر تنش خم نگردد پیش باطل گردنش. خوف را در سینه او راه نیست. خاطرش مرعوب غیر الله نیست. گرشتور بانی جهان بانی کنید. زیب سر تاج سلطانی کنید. تا جهان باشد جهان آرا شوی تاجدار ملک لایبلا شوی. لایبلا ملکی که از بین نمی روید. نایب حق در جهان بودن خوش است. بر عناصر حکمران بودن خوش است نایب حق هم جان عالم از جان جان شد جان از روح خالی شده ای مسلمان ای جوان ای طلبه ای دانشجو، تو روح جان روح این عالم قرار جان مرده پج مرده افسرده، رنج میبره از و بایه مونجی باشه پیغمبر نمیگه تو بشو منجیش نایب حق باش نائب حق همچو جان عالم است هستی او زل است. اسم اعظم است تو اسم اعظمی خود را بشناست درودی بخونیم اما عزیزان گرامی تذکر به دو مطلب آخر خواسته خدا چیه و خواسته دشمنان خدا چیه عزیزم نقطه خوبی را یاد شد که ما باید قرب شناست باش خوبی. خوبیه و شالله از این اسید در قسم می کنم که در این خصوص بیشتر بنگارد ما باید غرب ما را شناخته به نقطه های ضعف ما خبر شده و ما را مدتها حصیر کرده و اگرچه بعدی از کشورا به تعبیر علام ندره آزادم شدن در بعضی از جهای دنیا بعد از استعمار انگلیس اما از ندره فکری و اصارت فکری اون هنوز رو بردگی به سر می برند اما ما به هر حال بدونیم که دو تا خواسته است یک خواسته اونهاست و یک تلاش اونهاست و یک تلاش محمد رسول الله خواسته خلفای راشدین خواسته علمای دین خواسته مولانا عبدالعزیز در این جایگاه خواسته علما شما خواسته پدر خواسته مادر مهربان، یه خواسته اینا دارن، خواسته دشمنان دارن. حالا ببینیم، شما به فکر کنید، هویت خود را بشناسید، خود را بشناسید، که به کدوم سمت و سو داری میریم؟ آیا به سوی خواسته دشمنان داریم میریم؟ در جامعه، در شهر، در دانشگاه، در خوابگاه؟ یا داریم به سوی خواسته الله را میریم؟ خطن این قدم شما این دیدارها را ما خواسته ای قدمی ما قدمی در جهت تحقق های الله قرار می دهیم و تلقی می نماییم برای شما مبارک باد اما این قدمی اول نباید باشد قدمی آخر هم نباید باشد قدم اول اگر هستی قدم آخر نباشد هر حال خواسته الله از شما چیه و خواسته دشمنان از شما چیه خواسته الله اینه که الله را عبادت بکنیم خواسته الله اینه که سجدهش کنیم، زاری کنیم، توکل بر الله، اعتماد بر الله و تحقق خواسته والدین، علماء کرام، عبادت، اطاعت، اتباع رسول الله بیچون و چرا؟ خدمت به جامعه، والدین، بزرگتران، اساتید، ادب، پند پذیری این خواسته های. اما خواسته دشمنان چیه؟ که از یه موجود متمرد، دوچار شبهات و شکوک بیهویت پوچ لذت پراز خودسر گناهگار غرق در لذت ها برده فکری اونها اقبال شاید با گریه دارد میگوید اده ای را اقبال اینجوری معرفی میکند که در دانشگاه ها درس میخوند ناظرت میخوام. یا در جهان هر جا جه هستند میگوید افسوسه اینها در جهان اسلام زادند و تولد یافتن ولی مورید غرب هستن مورید کلیسا هستن افسوسه شعر شزیبه به خاطر بسپارید اگر نسپارد اگر نسپرده به حفظش کنید اگر نکرده اید در حرم زاد و کلیسه را مورید ادهی در حرمز و حرم من کل جهان اسلام اینجا در حرم زاد و کلیسا را مورید مورید و ارادتمندی کلیسه هر چیز غربی خوشش میاد از هر چیز اسلامی بدش میاد از هر چیز نبوی نفرت دارد طوری کار کرده طوری تبلیغات کرده با امکاناتش بر رسانه‌هایش و بوگاه تبلیغاتیش، و مبلغینش و این اسمش مسلمان در حرم زاد و کلی این را مرید حال بسیاری از چه بگیم اونها امروز سررشت بر سرنوشت جهان اسلام حاکمند و مسلطن اینجوری هست در حرم زاد و کلیس ها را مورید این چیزی کیه؟ در حرم زاد و در میز در جامعه از جایی اظهره در حرم زاد و کلیس ها را مورید اما فرمان از اوباما این میگه در حرمزاد و کلیس ها را مورید پرده ناموس ما را بردارید دولتر میگه دولت اغیار را رحمت شمارد اشاره به کسانی که برای استعمار راه را در هندوستان هموار کردن و در بسیاری از جاها جفر جا جعفر از بنگال و صادق از دکان اقوال میگه ننگ دین ننگ ملت ننگ وطن این را میگوید دولت اغیار را رحمت شمارد رقص ها گرد کلیساو ها کرد و مرد. چه زندگی داره که به حساب اون ها زیست. از رسول الله فاصله اش دادند لز عزیزان گرامی معذرت عزیز می گم این بخش را هوشد به عنوان هوشدار هوشدار آگاه باش جوان عزیز آگاه باش دانشجو آگاه باش آینده ساز ملت اسلام این روز ایمان شما را نشانه گرفتند از غربا اون که عزیزمون بیان فرمود ایمان شما را نشانه گرفتند میخوان چکار کنن ایمان را با شک با چیلی که تزلزال شبهات و تدریق شبهات شد تردید تردد ایمان شما را نشانه گرفتند افقت شما را نشانه گرفتند ارتباطی را که بر رسول الله دارید نشانه گرفتن گاهی از بالا شروع میکنند گاهی از پایین یعنی چی بالا از پایین گاهی از رسول الله شروع میکنند میان به خلفای دین و مسلمانان صدر اسلام و ازواج مطهرات و ائمه بزرگان و علما و, و تا بیا نمیخوام خودم نام می‌گیرم استاد عالم است این است همین حضرت سیف اسلام همینم مولانا فلان گاهی از اینجا شروع میکنند می و به بالا میرند. هر نقطه از را قوی نشون میده زیر میکروسکوپ. اینا درد تو نمیخورند. همه همین جور بودند. قبلی ها هم همین جور بودند. ارتباط را تصیف میکنند. چیه این توهین ها این کاریکاتور های توهین ها میزید؟ چیه که بعد از هر چندگاهی به الاخره اینا بروز میکنه و ازاردهنده قلبه های مسلمانه؟ در دلای مسلم مقام مصطفی هست روی ما زنام مصطفی هست باش عزیزان میخوان تو را از قرآن دور کنند حضرت میخوام لیسانس باشی دکتر باشی فوق لیسانس باشی استاد دانشگاه باشی ولی قرآن بلد نباشی آیا هستین چه؟ آیا بازم آیا نباید مجاویزی داشته در انقلاب اسلامی بعد سی هفت سال که ما انقلاب رو جشن میگیریم و اللہ انشالله انشاءاللہ که خداوند توفیق بده که انشاءاللہ انقلاب بمانای صحیح تمام احکام اسلامی پیاده بشه و ما انقلابی واقعی بشیم عزیزان گرامید ولی این اعضاف آی از از ہے سیستم آموزیشیه ماست او ساده خود با بعد بررسی بشه تحلیل بشه ما دنیا را داریم تحلیل میکنیم ولی از قرآن دوریم گرامی خواهی مسلمان زیستن نیست. ممکن جز به قرآن زیستن. خواندن قرآن، فهمیدن قرآن، عمل به قرآن، قرآن خان، ایک، قرآن خوان یک قرآن دو، عمل به القرآن، سه، این پیام مجلس ماست. به حل به قرآن نمیشه. این ناظر قرآنه، یهده ایلالتیهی اقوام، این قرآن به راهای استوار راهنمایی می کند. عزیزان گرامی، درودی بخونم برای. بله میخواند ما را از قرآن دور کنند نسبت به گذشته بدبین بدگمان بدزبان کنند قرب این میخواهد که خود ما بریم نقص عیب بگیریم از زندگی رسول الله زندگی مسلمانان و صدر اسلام تربیت رسول الله رو زیر سوال ببریم رزا عزیزان گرامی انتظار از شما تنهایی نیست که دانشجو خوبی باشید ما به سراحت میگوییم شما دانشگاه ساز باشید دانشجو ساز باشید تا پرورش دهنده یدان و باشید. من در سفری داشتم به هندوستان. خدمت شخل اسلام عرض کردم. مختصم تعریف کردم. فردی را دیدم که در یک مجمع علمی صحبت کرد. ما فکر می کردیم از لباسش، از صورتش، از خیافش که این فارغ و تحصیل یک حوضه علمی پیش ربط و منظمه. باید پرسیدیم این کیه؟ گفتن این پروفیسور فلانیه. چه؟ خلاقات کردیم. اسم محبوب حق چیکار میکنه دانشگاهی درست کردم دا. دانشگاه کجا فکر دانشگاه اسلامی درست کردم اسلام. دانشگاه است؟ دانشگاه من سنس و تکنولوژی آب مگالایا دانشگاه من اونجا شما بیای دانشگاه ما رو ببینید. رفتیم ازش مصاحبه گرفتیم چطور شد تو این دانشگاه رو درست کردیم. و من فکر کردم سرس یه علی دیگره را درست کرد شرحال علی علیگر تو مجله شما هست که اجاعهدار شده. فکر کردم که اون غربی هاروارد را ساخت اون دیگر آکسفورد را ساخت بچه مسلمان براند اونجا درس بکنن. من چرا نتوانم یه دانشگاه بسازم؟ دانشگاهی که هندو هم بیاید غیر مسلمان هم بیاید و من باشم متوالی همبرش مدیررش برنامه ریزش. و بعد ملاقات کرد و گفت اون وایس چانسلر شا مؤمن رئیس شاور گفت که این یه کندو این ساینتسته اون ساینتست یعنی دانشمنده علوم روزه گفت بله ما یه, یه دستگاهی درست کردیم برای ساخت سیمان خیلی فضا کم میگیره ما در تلاشیم که این را به ایران صادر کنیم این فردا جوان مسلمان و آراسته به سنت رسول الله اینجور افراد را زیر خودش تربیت میکنه مسلمان برای این نیست که همیشه باید پایین باشه و درخواست کنه که بله با اینجور کنید خودت شما بسازید خود شما اون فرد باشید که بهترین دانشگاه را در دنیا درست کنید بهترین پروفسور باشید بهترین محقق بهترین پژوهشگر باشید آثار شما عزیزان ننگ برای ما که سفارش بشه که آنجا گفتند که فلانجا نمیدونم دونم یک کاری هست و تعدادی معرفی کنید ما سراغی بعضی دانشجان رفتیم گفتند که نمرای ما زیر ما را قبول نمی کنید. چرا اینجوری دانشگاهی بسازید که تعهد پرورش بدید تعهد و تقوی تفارق و تحصیل آن بشه متعهد ترین فرد متخصص فرد دائی بشه مربی بشه مصلح جامعه بشه عزیزان گرامی عزیزان به هر حال کنیم. با تقوا باشیم فقط با حرف زدن نمیشود یک اراده کنیم دو عنابات داشته باشیم طلب و شو سه مجاهدت کنیم چهار مصاحبت کنیم خود را با تربیت بین و اصلاح بی‌نیاز ندانیم و زندگی و الگوهای گذشته را سیره رسول الله گرفته تا یومناذا بهترین انسان ها را مطالعه کنیم و سخنم را با این سخن علامه ابو ابوالحسن ندوی که در کتاب در سخنرانیه که عنوان اون سخنرانی این است که از این متو ایمان و اخلاق از این من این اختباس کردم احتمو به انفسکم به خود احتمام کنید به خیشتن احتمام ورزید طوری نواشه که تمام دنیا را داریم تحت دنیا را داریم تحلیل میکنیم و خود غافلیم نماز ها قضایه اخلاق دوریم از درس دوریم تو درما ازار ناراحت از عزی نمی کنه نتیجه نمی بینه مو به نفس کو دینین خلوقیان تربویان فکریان به خود اهتمام وردید دینی اخلاقی تربیتی درسی علمی همه فکری و امن و یقینو باور کنید خود را باور کنید می توانی میگن در ژاپن اینجا کتاب های بابا عبداد در ژاپن یکی میگفت که اونجا با این کلمه انگلیسی کتاب ها آیکن من میتوانم من میتوانم من میتوانم کار بکنم کردستی دانش آموزان ژاپن شاید اینجا بنوان مختره دانشمندان ما به هر حال تلقی بشه به هر حال عزیزان گرامی آمنو به انکم انتم العالم الاسلامی شماید جهان اسلام شمایید میتوانید بحران ها را کنید. این را آخر شایر میگه که اتحسب انک جرمون صغیرون تو خود رای دانوشی کچک میدانی حقیر میپنداری اتحس انک جرمون صغیرون شایر به انسان گفته من شما میگم اتحس انک جرمون صغیرون و فیک انتو العالم الأکبر در شما جهانی بزرگ نهفته اون جهان اسلامه اون جهانی که ساخته حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و من به طلاب چیزی عرض می کنم به شما عرض می کنم به طلاب میگم قبرستان آرزوهای نیکان و بزرگان و گذشتگانتون نباشید قبرستان آرزوها قبرستان عرضوها نباشید بلکه خاصگاه اون آرزوها باشید آرزوهای رسول الله در شما بروید ارزوهای محمد رسول الله ارزوهای والدین ارزوهای علمای صدر اسلام ائمه بزرگان ما و شما باشید اون مرد گم شده جهان اسلام به امید آن روز و ما توفیقنا الا بالله توفیق بر خدا و به امید لطف و عنایات الله امیدواریم ان شما حسرت‌ها را ان شاء الله به آرزوهای تحقق یافته تبدیل می‌گونید و آخرودامنا عن الحمد لله رب العالمین شما نیت کنید